گه شربت ایش صاف باشد گه دورد، گه پوشش ما پلاش باشد گه برد اینها همه سهل است به نزده آقل. این واقعه سهل است که میباید مرد کس مشکل اسرار ازن را نگشاد کس یک قدم از نهاد بیرون ننهاد من مینگرم ز مبتدی تا استاد از است به دست هرکه از ما زاد. کم کن تمه جهان که باشی خورسند، از نیک و بد زمانه بگسل پیوند، خوش باش چونان که هست این دور فلک، هم بگذرد و نماند این دوری چند. کس را پس پرده قضا راه نشد، و سر قدر هیچ آگاه نشد، افتاد و دو سال فکر کردم شب و روز، معلوم نگشت و قصه کوتاه نشد.